پول، خدا ملیت اینها تنها بعضی از داستان هایی است که منجر به ارتقای انسان از دیگر گناه های جانوری شد و او را بر کل کره زمین مسلط کرد. کتاب انسان خردمند کل تاریخ بشر را به سادگی و به شکلی قابل فهم توضیح میدهد در دنیا بیش از 23 میلیون نسخه این کتاب در بیش از 65 زبان از جمله فارسی به فروش رفته. البته تا این لحظه هیچ یک از ترجمه های فارسی به تایید یووال نوحراری نویسنده کتاب نرسیده بود. با وجود این ترجمه های تایید نشده انسان خردمند پس از چاپ در ایران به سرعت تبدیل به یکی از کتاب های پرفروش شد و به چاپ دوازدهم هم, هم رسید تا اینکه مقام های ایران چاپ آن را ممنوع کردند یووال و تیم همکارانش بعد از ترجمه کتاب به من، رنا رحیم پور مجوز که آن را تبدیل به یک کتاب صوتی کنم تا فارسی زبانان در هر جای دنیا به طور رایگان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. چرا که هر ای ارزش شنیدن، فکر کردن و به بحث گذاشته شدن را دارد. پس با هم تنها ترجمه تعیید شده کتاب انسان خردمند را بشنویم